حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا روز روزه بهتر بلک هوادارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی با عشم دل ببندی از که دل سبزه ید توی دنیا از موج موج شادی تا چاپ فردا با پسدا بهشب باکتت به سبز پیچید توی دنیا از موج موج شادی تا فردا با پس بردار سلام سلام علیکم حالا اولتون چزارره خوبین خوین این سلامتین چه می سلامتی؟ کنید فرشید منوافی هستم اینجا. رادیو پسورده شماره 962 یک هفته دیگه یک روز دیگه یک رادیو پسورده دیگه با شماید تح تح تح تح سلام جون به چه بارونیه اصلا هوا اینقدر دو نفره است تمایی نمی‌تسه بده بیرون خالی از دیشب که جمعه شب بود یه بارون خیلی خوب اخ چی شد بارون خیلی خوب که شهران گرفته داشت که علزم ادامه داره بارون طآمد هستم از شهران سلام سلام علیکم بارون حسابی اصلا نمیدونی چه هوایی شده یعنی واقعا حتی از تو ترافیک موندن لذت میبرم این دونه های بارون که میخوره رو شیشه اصلاً دل آدم قنج میره خیلی خیلی خیلی خیلی خوبه پریا آخی. هستم از تهران خیلی ممنونم به بهبح چقدرال؟ آقا ما ماوز شنبه گفتیم بهتون که گفتیم از جمعه یک موجه جدیدی از برف و بارون میاد و ما شنبه کلی از هوای برفی و بارونی تو نقاط مختلف ایران براتون میگیم بیا همین الان با محاسبات پیچیده ای که ما انجام دادیم توی مناطق شمالی تهران همین الان هابل قاعدتا برف شروع شده باشه دیگه به خدا والا. آی بچ بالا شهرین برین الان جلو پنجره وایسین یه دقیقه ببینید شده نشده چی شده اگر نشده باشه هم دیگه خدایش تا یک دو ساعت دیگه دیگه شروع میشه ها یعنی ببین یه که ابر از بالا سر رو رد بشه ما اینجا مثل عقاب نشستیم داریم رصد میکنیم فکر نکن یعنی میخوام بگم در این حد هواتون رو داریم مراقبه اوضاع هستیم شما هم تو این روزای برفی و بارونی و تو این زمستون سرد حالشو ببرین ولی هوای خودتونم بیشتر داشته باشین مشکلی پیش نیاد براتون فرشید فرشید فرشید یه از بارون بله، جان. خیلی توپه دو دارم محسنم از یه است سی. خیلی نفته و اما از آب و هوا و بارون و برف که بگذریم سخن موضوع این هفته خودمون خوشتر است و شعری که طبق معمول هر هفته شاعرمون سروده شاعر رادیو پس فردا این هفته سروده که گاهی غهر و گاهی آشتی شیوه ما مردمونه اونی که یه روز رفیق بود گاهی هم دشمن جونه خانمو با ام لیلا یه زمان خونه یکی بود حالا میگیره با شاتگان سایه اونو نشونه جنتی و هاشمی هم چیک تو چیک بودن قدیما رابطهشون حالا مثل جن و بسم الله میمونه توی صحنه سیاست جیبوتی با ما رفیق بود اونم این سفیر ما رو راهی کرده سوی خونه کاش که هم غهر و هم آشتی باشه مثل بچگیمون تو دلامون بعد از آشتی دیگه کینه ای نمونه با تشکر از شاعرمون این هفته با توجه به وفور قهر‌های بین‌المللی بین قاره‌ای بین منطقه‌ای فامیلی و خانوادگی در حوزه استفاضیمون تصمیم گرفتیم موضوع قهر و آشتی رو انتخاب کنیم تا این موضوع هم بدون اینکه ما با دربارش نظر بدیم و قصر در نره خدای نکرده دیگه بنابراین شما هم با هر کسی کدورتی دارید دیگه بذاریدش کنار بیایید به خاطر موضوع این هفته رادیو پاسوردام که شده آشتی کنید که در آشتی میگن فایده‌هایی هست که در قهر نیست با تشکر از آشتی شما خانم آقایون میدونید که توی شورای شهر تهران این روزا درگیری زیاده از یه طرف کشتیگیر سابق آقای علیرضا دبیر که عضو شورای شهر هم هست گیر داده به قالیباف جان و میگه توی شهرداری تهران بدجوری مراسم پرفیزه بخور, بخور بخور برقراره از طرف دیگه هم خب بالاخره قالیباف جان هم یک سری طرفدارو رو پا داره و تو شورا و با خب عزیزان خلاصه حسابو هم درگیرن دیگه اینه که آقای چمران به عنوان رئیس شورا این روزا مجبور اینجوری اعضای شورا رو به اربد نچشیدن دعوت آقا چمران هستنیشون. شو حالا اینجا بلند شدن و داد زدن منم من بچه چال میدون شما بعد شما بهتر برانم داد بزنم به به بزن زنگو به چند زنگوله رو پلمون چمرون از ته چال میدون میخواد داد بزنه یعنی این روحیات و فضا هایی که تو شورای شهر تهران حاکمه خیلی باحالو به خدا از جهت طرف تصور کنید حسین آقا رضازاده داره واسه زیر وزینه یا آبرفرض میگه از اون طرف عباس آقا جدی زیر یقم علیزون دبی رو گرفته میخواد کندرو مال خود کنه مونتا دبیرم هم داره اشکال گربه میزنه بهش اونورم که حادثه‌ای داره به حریف فرزی هی hey, ابدوچاگی و اینا میزنه دیگه رئیسشون آقای کمرون هم که تو رشته داد و بیداد ظاهرا از چال میدون شرکت دارن دیگه ایشون هم که اینجوری به اربدی کشی و این اینجوری میپردازند دیگه شما خودتون حد بزنین از اون شورا چی میاد بیرون دیگه خیلی هم عالی به خدا بیشترش کنه همه چیمون به همه چیمون میاد عالی آقا عالی خانوم او یس بابا الو فرشتتون سلام سلام علیکم. لس آنجلسم حباب و لونی شُرشور ناودون لس آنجلسم کرد. با دیدارش کرد آوازه وقت خودت باش فرشتتون انقدرم قور هوای ناسالم تهرانو نزن هیچ کجای دنیا تهران نمیشه اه. این لس لس آنجلسو تهران مسی که با هم تلپاتی دارم بی خود نیست میگن تهران جللس اینم دیگه یه نمونه گفتم تهران بارون میاد و اونجا هم بارون میاد مرسی از تماس شما ولی شما هم نفس از جای گم در میاد آقا اون میشکله نشستی لس آنجلس میگی جا تهران نمیشه خب بیا تهران ایراس میگی منو بیا تهران ایراس میگی بیا چی اینجا می تهران برو تهران اینجا که پراگه آقا برو تهران یه دو تا نفس اون شاخص آلودگی 150 درصد بکشی حالتو میپرسم اون وقت ولی خوبه ها لس آنجلس بارون میاد تهران هم بارون میاد حال می نه او oh, یس، yes. چند روز پیش شبکه خبر دوستان عزیزان خانم ها آقایون یکی از افسران زبده پلیس فتا که حواسش به همه چیز هست رو برای یه میزه گردی دعوت کرده بودن بعد ایشون آقا پلیس فتا داشتن در مورد خطرات شبک های اجتماعی هشدار میدادن و یکی از این خطرات رو خطر همین الانیه هویی زک کردن عبرات خب شاید در نگاه اول همه ما از این اکسای همین الانیه هو داشته باشیم و به نظر خطرناک نرسه ولی خب همیشه همه چیز خوب پیش نمیره گوش کنین ببین آقا پلیس که حواسش به همه چیز هست چی میگه گوش کنین ما یه زمانی توی این ایرانی وقتی که دور هم جمع میشدن شدن خانواده ها میگفتن که خوال جمع خنوادگی آماده بشید میخوایم عکس بگیریم خانواده ها خانم ها آقایون میرفن آماده میشدن شدن که میخوایم عکس بگیریم وقتی آماده می دوربین عکس می الان چی میگن میگن همین الا یههیی اون وقت تو جمع خانواده مادر خواهر نشستن محرم هم هستن با یه فضای باز این عکس رو میگیره یه پسر بچه ۳ چه ساله که میخواد بگه من و خام یه عکس رو بارگذاری میکنه. قفل از اینکه خاله شوهری داره که از انتشار این عکس بیم داره ایداد بیداد اید همین میخواستین که خاله با یه فضای باز عکسش بره تو اینترنت نکنید نکنیم نکنند اگه میخواین؟ اکس همین الان یه هویی بگیرین اولا یه هویی نگیرین اجزه بدین خوب خاله جان فضای بازیشو ببنده مقدار دومن بدون اجازه شوهر خاله جان این عکس تو شبکه های اجتماعی نذارین چرا اینجوری میکنین آخه شوهر خاله تون داره داغون میشه خاله تون ناموس شی... چیزه یعنی ناموس شوهرخاله هست ناموس شیعه که چیز خانم چرخنده بود. نمیدونیم دیگه والا آقا حالا باز تا دور هم جمع میشین، موبایل در بیارین، حمجه زرت زرت عکس یوی بگیرین بزنید های اجتماعی. آخرام شوهرخاله ها بیاد گاردنتونو بشکنه. گوش نمیدین دیگه گوش کنین، حقتونه. گوش کنین بین آقای پلیس فتا که آوازش به همه چیز از راس میگه قوبونا. دیگه چه خبر خوبی خوشین چیکارا می‌کنین ما نمی‌بینیم خوشین تعریزی نبودیم اوکی خب همونطوری که گفتم اول برنامه این هفته میخوایم با هم در مورد قهر و آشتی صحبت کنیم شاعرمون شعر گفته بود در جو قهر و آشتی امروز می‌خوایم یه نگاهی به عرصه سیاست خارجی و قهر و های سیاسی بندازیم ببینیم بالاخره در دنیای دیپلماسی قهر و آشتی کشورها به چه شکل اتفاق میفته؟ نترسین نترسین فردا میایم تو خونه و خانواده خدمت شما میرسیم. عرض بزرگوارتون که راجع به این قهر آشتی می آیم خونه و آشتی میویم تو خونوخونو بود. بعد همین اول برنامه سلام مخصوص می کنیم خدمت معظمله و عوان و انصارشون و بابت تمام قهرایی که در این سی و چند سال با کشورهای دیگه کردن بهشو خس خسته نباشی عرض می کنیم و یک سلام ویژه هم می کنیم خدمت دکتر ظریف که در همین مدتی که وزیفه آشتی دادن ایران با کشورهای جهان رو به عهده داشتن تونستن در چند نوبت بگیرن ناپلونی و روابط ایران با بعضی کشورها رو بهبود بدن. به بروه. تمامش کن که میدونی تو رو میخوام مثل جونم نظار برم که بد تو منم زنده نمیمونم تمامش کن که میترسم من از احساس تنهایی قلبم با تو رو میشه تمومش کنین فسنا رو تامومش کنین قهر و نارو دلم تنگه واسه عطرت تو چشمای منو ببین نرو تامومش کنین فسنا رو تامومش کنین قهر و دلم تنگه واسه عطرت علی بله همطوری که گفتم امروز شنبه 19 همه دی ماه 1394 در برنامه 962 میخواییم بریم سراغ قهر و آشتی در سیاست خارجی هوا رو از من بگیر سفارتم را نه بیامی گگه شماره 962 ای کسانی که ایمان آورده اید بدانید و آگاه باشید با حمله به سفارتخانه و آتش زدن آن قبل از آن که انزجار و خشم خود را نسبت به کشور دیگری نشان داده باشید توهش و بربریت خود را نشان داده اید که متاسفانه در بیشتر مواقع به پای مردم یک کشور نوشته می شود پس چنانچه هنوز تنها راه قهر و رقت ارتباط با کشورها را حمله به اماکن دیپلماتیک و سوزاندن سفارتخانه ها می دانید. همانو از بی مزمن رنج برنده گانی. امزا از این وضعیت شرمنده شده ها و همجور انگشت حیرت به دهان گرفته ها و از شدت عصبانیت به نقطه جوش نزدیک شده های رادیو. پس و دا دا دا دا دا دا معاین دختر خان پسرو وقتی یه گروهی یا دستی توی یه کشور به سیاستهای یه کشور دیگه اعتراض دارن. قرای مختلفی میتونن بکنن مثلا میتونن بیانیه بدن اونو محکوم کنن برن به دادگاه بین‌المللی ازش شکایت کنن از وزارت خارجه کشور خودشون بخوان با اون کشور برخورد کنه یا که در آخرین مرحله دیگه اینکه برن مجوز بگیرن جلوی سفارت اون کشور تجمع آرام برگزار کنن از این چیزا بنویسن بگیرن دستشون شعار و فلان و اینا درخواستای خودشون رو به صورت خیلی ساکت و آروم جلوی سفارت مطرح کنن اینا روشهای دیپلوماتیک ابراز اعتراض بود به یک کشور خارجی اما تو کشور شهید پربر ما نه اینکه که حکومت اصلا پدر جد اخلاق دنیا است یه سری گروه هستن که نه تنها به این سوصول بازی های دیپلوماتیک علاقه اینشون نمیدن بلکه به جاش روش های که خاص خودشون دارن یکی از حیجان انگیسترین این روش های اشقلاتیک همین روش فتح سفارته یعنی اصول ما ایرانی دیگه فت دوست داریم. دیگه. تسخیر دوست داریم. آتیش هم دوست داریم کللا سفارت هم دوست داریم یعنی هشت سال جنگ ایران و عراق و ماهی داشتیم کشته میدادیم بعضی مناطق کشور رو هم به عراق تقدیم کرده بودیم ولی اینا اصلا مهم نبود چون ما داشتیم همینجور از نظر مسئولین عزیز فتح می کردیم. میگن فتح دوست داریم یعنی همینجور چون ما داشتیم فت می کردیم یعنی بر اساس لاف و ادعا ما خود بغداد رو هم از عراق گرفته بودیم منتها صدا در نمی آوردیم ریا در مورد سفارت هم خب خیلی کار آسون‌تر دیگه چون نیروی انتظامیمون در این جور مواقع خب تبدیل به یک شیر برنج فرد اعلی میشه هم دچار نابینایی و ناشنوایی موقت میشن و چون سر برمیگردون میبینی ای بابا یا بچه بسیج دیوار سفارت کشور مورد نظر رفتن بالا پریدن تو ساختمان سفارت دارن با شاهکارهای خودشون سلفی هم میندازن تازه حالا باز الانا تو این دور زمونه اکثریت آقایون مسئول فهمیدن که این کار کار زشتیه باید محکومش کرد مثلا ای حرفا مثلا شافه کن سال 58 تو جریان حمله به سفارت آمریکا، اون موقع نفر اول مملکت دید از این ماجراجویی چند تا بچه دانشجو میتونه یه عالمه برای سیاسی بر خودش ببره اینکه که پیام داد این انقلاب دوم است. خب معلومه توی همچی سیستم دیگه این غهرهای عظیم بینون مللی ناشی از حمله به سفارت ها میشنه سریال ت... تاریخی و تلخ با این اوزا با این وز والا با این اماماشون یه دوستم تازگی خیلی سر به هوا شده پای پسری در میونه مامانش اینطور فکر میکنه بر همین اون هفته ای زنگ زدو که من با سمیه صحبت کنم ببینم چی به چیه دیروز که سمیه رو دیدم هنوز چیزی نپرسیده خودش اعتراف کرد عاشق شده گفتم دو طرفه یه, یه طرفه گفت دو طرفه قرار ماه دیگه بیاد خاستگاری گفتم مبارکه شغلش چیه گفت بسیجی گفتم یعنی تو این همه سال زخم زبون مردمو شیندی مجرد موندی که یهو सीजन بسیجی شی خب هر بسیجی که نه رئیس عملیاته، تو که می دونی من چقدر مردای قدرتمند و دوست دارم گفتم بله گفت بذار عکسش رو موبایلم دارم نشونت بدم اون هفته جلو سفارت عربستان گرفته وقتی حمله کرده بودن گفتم باشه حالا بی خیال گفتی کی قراره بیاد خاستگاری؟ گفت ماه بعد منتظر این سر و صداهایی که در مخالفت از این کارشون در اومده به خوابه بعد گفتم پس مبارکه فقط یادت باشه بهش بگی زنگ خونتون چندومیه وگرانه یعنی ممکن اونجایی اینکه زنگو بزنه از زیوار ساختمونتون بیاد بالا خوبیت نداره دیگه گفت برو بابا گفتم بعدم حواست باشه از شرایط نقدتون اینو بذار که هر بار قهر کرد نزنه خونه رو به آتیش بکشه مثل سفارت عربستان خانم ها آقای دختر خانم ها آقا پسرا این هفته لطفا دقت کنید این هفته اگر خواستید با ما در تماس باشید به ما بگید چقدر اهل قهر کردن و لبورچیدن هستین وقتی با کسی قهر میکنین از اون تیپای بد قهر رو نمیدم قهر, قهر تا روز قیامت و اینجورین یا بعدش بالاخره به یه بعونهی بالاخره میرین آشتی میکنین بارمون از قهرها و های بزرگ و تأثیر گذار تو زندگیتون بگین و بگین چقدر طول کشیده و اگه دوست داشتین حتی بگین سر چی بوده از قهرهای کودکی و جوونی و نوجوانی خودتون تا چه میدونم مامان و بابا گرفته تا آشتی خاندایی و هم خانم که منجر به برقراری مجدد روابط شده دیگه آشتیهای گذار دیگه چه از قهر ایران و آمریکا گرفته تا آشتی خومینی و صدام خلاصه این هفته همین یه مقدار با ما درد دل, دل کنین و هم همین برنامه رو همین برنامه رادیو پاسوردا رو را با موضوع قهر آشتی همین رو بهونه کنین و با اونایی که باشون قهرین آشتی کنین چرا که نه آقا تیریبون رادیو پاسوردا خانم آقا تیریبون رادیو پاسوردا این هفته پذیرای کنان شماست اگر خواستید آشتی کنین ما از همینجا صداتون رو پخش می‌کنیم همینجا براتون جشن هم تازی می‌گیریم والله به خدا چقدر اهل قهر کردن و لب هستین با کسی اگه قهر میکنین از اون تیپای بدقه رو قهر قهر تا روز قیامتین یا بعدش بالاخره به بهونه بحونه آشتی میکنین و کلن از قهرها و آشتیهای بزرگ و تحصیل گذار تو زندگیتون برامون بکنید مارشال توی فیسبوک گفته این قهر کردن ها همه به خاطر لجبازی و یک دندگی ما هست از تربیات و فرهنگ غلط ما هستش خودم یه نمونه خب مارشال جان وقتی خودت میدونی همه اینا رو این همه قشن برامون کامنت گذاشتی خب چرا قهر میکنی؟ قهر نکن اصلا گپ و گفت و صحبت و گفتمان اینا پس برای چی گذاشتم؟ مالا همین روزا توی قهر چیه؟ بعد... م... چیه این ما بو ام او اسمشه در فیسبوک گفته که من از اون تیپ قهرکنای های قهر تا روز قیامت نیستم اما الان حدود سه ساله با پدرم قهرم نمیدونم چرا اصلا دلم نمیخواد برم باش آشتی کنم خب دیگه حالا همین برنامه رو شما بهونه کن گفتیم که برو آشتی کن دیگه بعد از سه سال نخوای آشتی کنی دیگه کی میخوای آشتی کنی برو برو بالكلا انقدر دلدل دل نکن آشتی کردن هم مثل اشته که زیر دندون آدمه بری جلو حسش میاد نه, ترس. نه ترسی چی نمیشه ما اینجاییم هوا تو داریم ما با هوا تو داریم برو تو اینستاگرام مهران گفته به قول خصوش اکیپایی خصوش اکیپایی حتی اگر قهر هم هستیم حق نداریم با هم حرف نزنیم این یعنی عشق ای پست و شکیبایی عزیز روح شاد کاش همین یه جمله رو هممون صلوح روابطمون و دوستی قرار میدادیم دادیم کللا قهر ریشهکن می دیگه ما اصلا دیگه این برنامه این فت نداشتیم اصلا. مهرسا گفته توی اینستاگرام من اصلا تموم کارها با قهر کردن پیش میره تکنیک خیلی خوبیه به همه پیشنهاد میکنم چون واسه من که خوب عمل کرده شما حالا راه های میخوایم بکن مهرسا جان زر نداره. این تو میرویی میگن به ترکستان است حالا مقتعی هم جواب بده مثل که جواب داده دیگه میگی جواب میده مقتعیه میگم شاید میگم یعنی تو دراز مدت یه دفعه دست رو میشه دیگه کسی واقعی به قهر کردن نمی نهه من منظورم اینه مراقب باش برایم پس برامون این هفته از غهرها و آشتیهای بزرگ و تحصیل تو زندگی بگید و بگید چقدر طول کشیده و اگر بگید سر چی بوده ایمیل ما پسفرداعترادیوفردا.com دو بیست و یک پنجا و دو سف چار سد بیست هفت سی و و سه پنج و نو اینستاگرام میتونید تلفن های ما هم در 22 دو یازده بیستو چهار و سی و سه و دو سف چهار سی و کردم تو دلتو جا کردم از نگاه اولت فهمیدم همه چیمو پای چشمت میدم همه بایامو سر کردم در تو رو جان درود بر شما خواستم یه تشکری از فرهاد عزیز بکنم به خاطر این اپلیکیشن آلیش و خواستم یه یادواریم هم به دوستان بکنم که گاهی وقتا اگه این برنامه‌های اخیر لود نمیشه یه رفرشی در سمت راست بالا این اپلیکیشن وجود داره که وقتی شما رفرش میکنید برنامه های روزهای اخیر که لود نشده بود دوباره لود میشه من خودم تازه اینو کشف کردم درود بر همه شما در رادیو برد. خیلی مچکرم از کشف جدیده شما از این بچه قدیمی ها بودا بچه قدیم خارجی ها خارجی قدیمی ها بود معلوم بود دیگه لحظه گرفت انگلیسی عرضاته لحجه گرفته بود دیگه این طوری دمه شما گفت حیبل دارید منم آقایون دختر خونم آقای پسر الان اولا که من گلوم سینم گرفته گلوم خیلی داغونه اصلا یه وضعی نمیدونم انگار خاک میپاشن تو گلو چه شکلی میشه من امروز اینجوری شدم هر لحظه ممکنه وسط اجرای یه به فنا برم دیگه مراقب باشید سامی هایی به فنا رفتم یه موزیکی چیزی بره دیگه <تصفح> ببخشید اینو میخوام بگم الان یکی از خوشحالی هایی که تو دنیای مجازی بین باوعده بامزی ساکنه همین این دنیا دنیای دنیای مجازی همینجوری در حال داغ شدنه این ماجرای خدمات کمپانی پخش فیلم و سریال نتفلیکس آمریکاس به ایران حالا نتفلیکس چیه نتفلیکس شرکتیه مای 7 8 دلار یا یورو یا 10 دلار یا یورو از شما میگیره متفاوت قیمتاش و در عوضش یه مجموعه خیلی غنی از سریال و فیلم و نمیدونم مستند و اینا رو در اختیار شما قرار میده میتونید آنلاین بشینید ببینید. اولین خوشحالی بابت این ماجرا از این اومد که نتفلیکس هویی همین چند شاپیش اعلام کرد خدماتش رو به بیش از 100 کشور دنیا ارائه میده و ایران هم جز اون کشورها بود واقعا این کشوری که ما توش هستیم یعنی چک ریپابلیک هم جمهوری چک هم یکی از همون کشورها بود و ایران هم بود. اینه که بعد از مدت ما خوشحال شدیم که حداقل یه جا ما رو جزوی کشورهای جنگ زده و حامی تروریست و این حساب نکردن این یکی اما سوالی که برای کار برای عزیز ایرانی پیش اومد این بود که با این اینترنت پیزوری که ما تو ایران داریم آیا نتفلیکس که همه خدماتش بر اساس داشتن اینترنت پرسرعته خواسته مثلا با هم شوخی کنه که در رو برمون باز کرده آیا نتفلیکس خواسته مثلا چه میدونم خواسته مثلا نداشته همونو بره بخمون بکشه حتی چه بعضی بعضیا این روزا آرزو میکردن نتفلیکس این کارو نمیکرد و ما رو جزو همون لیست کشورهای جنگ زده و تروریست نگه می داشت چه اینجوری از نظر روحی جوری دیگه تو تر... ترور شدیم دیگه یعنی بچهای داخل ایران الا بامازه تر اینه که نتفلیکس یه شعاری داره به انگلیسی میگه که نتفلیکس and chill نتفلیکس and chill معنی لغویش یعنی که خب با نتفلیکس مثلا ریلکس بشید دیگه چیل میگن چی میشه معنیش آقا سامی چیل چی میگه راحت باشید حال کنید با نتفلیکس حالش رو ببرید مثلا توی مایه ها. اما این جوون های شیطون غربی تربیت وقتی که مثلا به کسی میگن بیا نتفلیکس انچیل البته یک داستانی هم داره که حال بخوام بگم. بگم خیلی طولانی میشه ولی قضیه آقا نتفلیکس انچیل مساوی شده با همون کارهای شب به خیر تو سری اینا دیگه آره اینجوریه الان الان های شیطون ایرانی هم از این همه ماجره های نتفلیکس و این همه فیلم و سریال و فلان که اونطوریخته همین یتکشو گرفتن هی دارن تو عالم شوخی جدی به هم از این پیشنهادای نتفلیکس انچیل منجر به شب به خیر میدن اینا که خواستیم در پایان این بخش به شما هشدار بدیم یه دفعه کسی بهتون این روزا پیشنهاد داد که عزیزم بیا نتفلیکس چیل یا میای نتفلیکس انچیل این مواظب باشید آره <تصفيق> <تصفيق> اگه من تونستم با حرفم تام کنم مراقب باشید خلاص نه که نريدا نمیگم نرین نه, نه نه نه نه فقط مواظب باشید چون این چیل با اون چیل اون یکی فرق میکنه دیگه از ما گفتم بود البته با ما چیل بکنید مشکلی نداره پسورد اون چیل اوکیه از بردارن چیل اون معنی شب بخیری نداره فقط نتفلیکسن چیله که معنی شب بخیری داره فقط خواستم که دیگه مراقب باشی بله Netflix and chill. Netflix and chill. Let me keep it real. Netflix and chill. Netflix and chill. Netflix and chill. Let me keep it real. دوست داری یا سامی ها دوست داری نیست مخوای بری نتلیکس هنچیل همین روزا این اول برنامه ها که بعض وقتا میگی سی یا پنج تا برنامه مونده سی یا تا مونده شمالش محکوز خلاصه میری خوب اینجارو دوست ندارم برای چی دل ما رو میسوزونی؟ دقیقا دل منه که میسوزونی اگر هم رفتی باید به با یه برنامه بهتر برگردی اینجور نمیشه رسمش نیست خب پخره ماام یه وقتایی دوست داریم حالا خودمون رو لوس کنیم و عزیز کنیم اون جدیددا میدونی حس میکنم تو کم توجه میشه بهمون به تو برنامه نمیدونم یه همچین حسی اینجوری میگم برکه حواستون باشه دیگه که گل همین پنج روز و شش باشد بله آقا ولش که مهم نیستگه ولی سی و هشت تا برنامه مونده و دیگه تموم ما الان برنامه نوصدش تو دو ارا دیگه سیو هشت دیگه بود تمام اگر بار گران بودیم و رفتیم اگر نا مهربان بودیم و رفتیم به روزگار <تصفيق> دلنگرانی ما از خودخاهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد امران ملک موتویی سلام سلام فرشی جان سلام به همگی چه خبر ها؟ همیشه خوبه؟ همیشه خوبه من نتفلیکس یه هوی نتفلیکس خالی لطفاً دیگه آه دیگه آره. ما صحبت قهرآشتی میخوام از یه فیلم حرف بزنم که با کلی قهرآشتی بین کارگردان فیلم و عواملش ساخته شد واسه چهارشنبه گذشته فیلم اکران شده فیلم آدم باش بخش از صدای فیلم آدم باش ساخته مجید جووامرد با هم بشنویم بعد من توضیح میدم که موضوع چی بود باشه اون شد بفهمید ببینم ببخشید شما هم خرما می‌خوای هم خرماراست اصلا دنبال چی ارسیه این مدرسه سوجه ای ما رو هر چه زودتر روشن کنید حالا دنباله بله آدم باش رو بخشی از صدوی این فیلم آدم باش ساختی ساختیم مجید جوانمردو شنیدیم ماجراش چیه کامرام اول بگم که جوامرد بعد از 25 سال دوری از سینما با این کار برگشته فیلم یه فیلم کمدی بازیگر اما بازیگری اصلیش امین حیایی، نیوچاز قمی اکبر عبدی و سیروس گرجستانی هستن اما ماجرای قهرآشی که گفتن برمیگرده به امین حیایی و جوامرد که گونه چند بار به خاطر مسائل مالی موقع فیلمبرداری صورت گرفت ولی عجب. کار به همونج ختم نشد، رسانه ای شد، کار به جایی رسید که جوامع توی نامه سرگوشاده برای حیایی نوشت که پولکی هستی و به خاطر پول کاری کردی که 20 روز فیلمبرداری بیشتر طول بکشه و کلی خسارت زدی. بعد اسم فیلم هم اشاره کرده، گفته بهت میگم برو چه چیزه. اسم فیلم و یه بار دیگه بلند برای خودت بخون. خلاص این آدم بود که دو نفر آره, آره, آره شکر و تو قهر و قهرکشی هستن. عجب تو موسیقی چی؟ کسی با کسی قهری نکردین این روزا؟ بالا فیلم بغیره از علی رهبری رهبر او که سمفانی که هفته یه و لاخر میکنه دیگه کار نمیکنم بعد آشتی میکنه کسی رو نداریم اما تا, تا تو توی دنیایی موسیقی هستی می خبرم بدن که دومی آلبوم رسمی پویا نیکپور به اسم خارج از تفاوت امروز ساعت پنج تو مجتمع پردیس تجریش رونمایی شد از فردا رسما این آلبوم تو بازار منتشر میشه بسیار خب ممنونیم ازت کامران عزیز باید خدافزی میکنیم تا فردا میریم بخشی از همین کار پویا نیکپور رو میشنویم یکی از کارهای همین آلبوم دیروز و امروز تمام ب خاطر پیو هنوز تو لحظه های ماگردردی از گذشته هست تمام زندگی اونو گذاشتیم پای یه در دامی کسی از مله میدونه چی اومد سر فردا مییم با دنیا مهلبون با سلام ضمن کف کردن از انتشار خبر کشته شدن هفت نظامی ایرانی دیگر در سوریه 23 شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می در خاص رهبر ایران از مجلس خبرگان آینده که بعد از ایشان رهبری انتخاب کند که جلوی دژمن بی ایستد و نظر کارشناسان که عجب رهبر فرزانه واسه بعد از مرگش هم نگران دشمن نیست افزایش قیمت سکه و دلار در بازار تهران و پیش بینی رشد 6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 2016 از سوی بانک جهانی و سوال فعالان ارزی سکه و دلار فروشی که درش بانک جهانی رو از رشد واقعی رو بانک جهانی راسته دلار فروشی تهران مشخص میکنه. و بازداشته یک شکارچی قوچه وحشی در اطراف تهران و توصیه ناظران به شکاربانان شکاربانان دستگیر کننده وی که تور خدا موذف باشید ناخون این شکارچی خشبر نداره و به غذایه میگیره ادامتون میکنه سسوته مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بری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 سلام. بنابرای گزارش های رسیده همکنون یکی از بزرگترین و مهمترین مشکلات مردم که این است که آیا حسن خمینی با توجه به عدم شرکتش در آزمون علمی مجلس خبرگان برای شرکت در انتخابات تایید صلاحیت می شود یا خیر بر اساس همین گزارش ها حتی بعضی از گروه های مردمی تهدید کردند در صورتی که یادگار یادگار امام در این انتخابات تایید صلاحیت نشود یارانه های بهمن ماه خودشان را به نشانه اعتراض از حساب بر نداشته چند شب هم به صورت یکوری در بستر خواهند خوابید این در حالی است که امروز سخنگوی شورای نگهبان به خوانگاران گفت عدم شرکت در این آزمون نشاندهنده رد صلاحیت افراد نیست و پس از شنیدن این خبر هم تعداد زیادتری از اخشار جامعه به شکل علامت سوال در آمده برای آینده سیاسی یادگار یادگار امام نگرانتر شدند پایان محشوه اخبار بله همکنون در خدمت کاشاست انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی و عنامه جمع آقای جامسنه هنگ هستیم تا ما رو در جرگان و آخرین خبرهاشون قرار بدن بله جامسنه هنگ خبردار عزیز بله منم بل. آزاد عرض میکنم و بل. خدمتی هم شنوندگانی عزیز هم سلام دارم سرنگ جان بفرمایید که هفته بل. پیش که این حرازه لوباش به سفارت عربستان حمله کردن شما دقیقاً کجا بله ارز به حضور شما بله. بنده ما تاسفانه اینجا در خدمتی شما بودم اونه راست از هرنگ شنبه هفته بله. پیش بید دیگه دقیقه. خب به سرهنگ جان نظر شما در مورد این اقدام چی؟ ببینید این اقدام در هر صورت همونطور که همه این مقاماتی کشور گفتن بله. خب کار درستی نبوده خب کار درستی نبوده بله. ای چرا این نیروهای شما نتونستن ازش جلوگیری کنند؟ ببینین نیروی انتظامی بلاخره همون جوری که کاری عزیز منم قبلا گفتم؟ ولی نمیتوند که خدایی نکرده با زوری خشونت با مردم برخورد کنه است ای؟ که واقعا ما بعضی وقتا مسائل رو اهم فل اهم میکنیم تا خدایی نکرده <تصفيق> کسی می آسیب نبینه آه، چیزیه و زدی با... اون کنال ها هنگ اهم و فل اهم یعنی چی عربی نه. بودی نه عزیزی ما. اهم و اهم یعنی ما نگاه کنیم بلی. به اولویت و شرایط. من نمیتونم به نیروی نمیتون. خودم دستور بدم که جوون ها به خاطری بالا رفتن از دیوار باباتون بزند که آقا جا جم... ببین، دیوار باغ خونه همسایه نبوده که دیوار سفارت بوده سران. حالا هر دیواری بوده ببینید پولیس وظیفه داره به شکلی با مردم برخورد کنه که شعنا کرامتی شهروندان خدا آینه کرده خط چندان نشه. جاب چند هنگون موقعی که با کلاشینکف تا ت ت ت ت ملت رو با تیر میزدین یا با ماشین از روی مردم رد میشدین این موقعه عزی... چیزی خط چرا نمی‌شد؟ بیبی عزیزی عزیز من به م... حساب خدا بی جهاد قاطی نکو. بیبی مرد خردی پلیس با آشنا را ارازلوا باشو. کسانی که قصیه شو تو مملکتان دارن خیلی با برخورد با تجمعاتی که برای اعتراض به دولتی دست نشان و فاسدی آل سعود برگردار میشد این فرق داره یعنی سرنگ این قبول شما... داری نیروهایی که به سفارت حمله کردن خودی بودن دیگره نه عزیز... بگو دیگه معلی به واشه نال میکرده دیگه آقا... حتی من دیدم سرنگ حمله آرز... کننده های به سفارت با بچه سلفی سلفی می میگرفتن میذاشن تو اینستا که من نیروی ضد شورش همین حالا نگویی نه, نه فف... خیلی شک این شکل نبوده بعد می میکنم آقا به هر حال پولیس حسب وزیفی ذاتی خودش در حدی توانا در حدی که خدای نا کرده کرامت کسی لکن دار نشه بر خورد کنه بابا باشه سر هنگ ما هم چی بله. بابو گلویییم دیگه بله. حالا مقصدی بعدی کجاست سرحنگ کجا مقصدی بعدی برای چی چی برای... درست صحبت کن ببینم چی چی میگی شما آ سفارت بعدی دیگه سرحنگ یعنی بعدش چی... قری این مردم و نیروهای خود جوش کجا رو میزنن من... به شجونن دفعه آقاجو من چه میدونم سواله بی رفت میکنی شما تو دواره... اگه این دفعه حمله به سفارت بشه من با خودت نوری بات خر میکنم شما چیکاره ای باز با خودم ببرم شما من رفیقتم سرحنگ تو رفاقت ترید نمیشه من هیچ رفاقتی ندارم با شما آقا جو جبا. شما با ارفاق یه همکاریه کوچیکی با ما داره همین سرهنگ من از دیگه... بچگی دوست داشتم به سفارت یه کشوری جایی حمله کنم یعنی... سفارت درسته سویه نه اینجی بویتی می بویتی نه که اینه علکه شما بچهگی بیخواد کرده بعد برم تو دفتر اه... سفیر سرهنگ اینجوری سفیر رو پت کنم یعنی... جو... رو سینش. بگم یه فیزایی دایم من بده و جنم شما دا چیزی یا ده خوب بعد که سفارتی گرفتم میرم رو دیوار سفارت به حمله من... کننده ها پیام میدم نه خیلی ای ای شما دو ای بار این شما دوباره این دارواتو یا نخور نه یا جا به جا خور نشو ببین چی دن... میگم تکن... ای عزیزان من خودش من هم مثل شما یک سفارت گیر بودم آقا جو... البته بودم ها اینجوری میگم تیری راهبری میشم بنده اینجا رو آه... ترک میکنم واقعا خدا رو تا برسیم بر. من بنده اینجا نمیمونم میرم که هی میروی ده گیرم که در میروی و این همه سفارت های هنوز گرفته نشده چه میکنی؟ سرانجی ببین جون تو بیا یه بیسیم بزن مرکز ببین جایی اگه سفارت گیریه بریم من این بارزون برسم بیا برای جون سر بیا بیا جون بیا بیا دیگه بیا دیگه بایس سرانجی عزیزت دکن دیگه آرزوی سفارت گیری بر زبانان عیب نیست سرانج جون بر سرانج یه بیسیم رفت بیسیم نباشد که همه اخشار در انتخابات شرکت نکنند لکن همه بکنند اما خوملی به این وسیله در اجراب خوابیش مقام معظم رهبری در دعوت از همه اخشار حتی مخالفین معظم له به شرکت در انتخابات پیش رو از این اقشاب داشتنی و خواستنی برای شرکت در انتخابات مجلس و خبرگان در اسفه ماه دعوت به عمل می آگرد خانواده محترم و معزز کلیه اعدام شدگان دهی شهست خصوصا سال شست خامنواده دوستابشتنی کلیه کشتشدگان در درگیری های سال های هفتاد و, هشت و هشتاد و هشت همه زندانیان خوب و بی ادعای سیافسی سی و هفت سال گذشته کلیه گرام عزیز و نفوزی پر پردل و جرعت به همراه خامنواده محترم حتی محمد خاتمی کلیه اقلیت ها دینی به خصوص بهاییان باحال و با معرفت کل کشور و همه ی کسانی که به اشکال مختلف از نظام مقدس جمهوری اسلامی دلازرده یا ناراحت هستند بیایید در دماغدم انتخابات کینه خود را کناد بگذاریم و رأی بدهیم چون ولی از ما چنین خواسته است ستاد ماسمالی کردن انتخاباتی شاهکار های نظام در چهار دهی گذشته کل کشور خانم آقای اون دختر خانم آقای پسر را قهر کردنای جمهوری اسلامی مختص شیطان بزرگ نمیشه و به بجز چند تا کشور آفریقایی و آمریکای جنوبی بقیه کشوران به شکلی یا توی اون لیست کشورایی بودن که توی نماز جمعه ها و سر صف مدارس بعد از مرگ بر آمریکا نوبتی براشون روزی مرگ میشده یا بالاخره توی دوره یه لقبی مثل روباه پیر سگه هار نمیدونم نوکر دنبال روحامی سهیونیسم آل سقوط از اینجور چیزها از این جور گرفتن از جمهوری اسلامی اینه که دریوری گفتن و قطع رابطه و پرچمماتیش زدن و سفارت گرفتن و این چیزها توی جمهوری اسلامی مادرزادی و کاریش همزارند نمیشه کرد. حالا این وسط کشورهایی ای یع تصمیم گرفتن برای اعتراض به این مسئله یا به خاطر نگرانی از امنیت سفرهای خودشون سفارت خونه هاشون رو توی تهران ببندن این مسئله چیزه خیلی عجیب و غریبی نیست. هر حادث یک بار و دوباره اول حادث هستی دیگه بار سوم و چهارم دیگه نمیشه اسمشو گذاشت حادث و ماسمالیش مالیش کرد توی روابط دیپلوماتیک هم اعتراض و دعوا و قطع رابطه و این چیزا آداب و روش خودشو داره مثلا این روزا همه جا پر شده از جوک در مورد اینکه کشوری به کوچیکی جیبوتی هم سر مسئله حمله به سفارت عربستان با ما قطع رابطه کرده ولی چیزی که بیشتر قابلیت جوک ساختن داره اینه که کشوری به کوچیکی جیبوتی توی آفریقا هم با قواهد دیپلماسی آشناس و توی کشوری به بزرگی اه... کش... بز... یک کشوری که بزرگی کشور ما هستن کسایی که متاسفانه از این مناسبات سر در نمیارن و هنوز بالا رفتن از دیوار سفارت و آتش زدن اماکن دیپلماتیک رو یک شیوه برای نشون دادن اعتراض در روابط بین الملل میدونن. حالا بگذاریم از اینکه الان کارشناسا دارن میگن قطع رابطه با همین این جیبوتی کوچولو که همه دارن امروز رو نقشه دنبالش میگردن چقدر ضرر اقتصادی میتونه برای ما داشته باشه و چقدر میتونه تجارت دریایی ایران رو بهش آسیب وارد کنه و این حرفها. حالا اگه به نظر عزیزان خبرگویزیای فارس و تسنیم توی این اوضاع قطع رابطه کشوری مثل جیبوتی با ایران خنده داره میتونن تا دلشون میخواد برای جیبوتی جوک آهنگ بسازن و بهش بخندن انقدر بخندن تا تو دنیا از... هم بهشون بخندش نیستی فریبورز غریب سلام سلام سلام به همگی فرشی جان فریبورز امروز کلی خبر بود تو سایت های مختلف در مورد آزادی سوشا مکانی زندان آزاد شد بلاخره سوشا درست فرشی صبح تا حالا خبر بود آخرین خبر اینا تو این مسائل بازداشتش این بود که وسیغه به وسیغه یک میلیارد تومانی تبدیل شده قرار بازداشتش قرار بوده که آزاد بشه تا چند ساعت دیگه من این فکر میکنم تا فردا صبح خبرگزاری گزارش شده که آزاد بشه یه خبرم بود که حسین کعبی بازیکن سابق پرسپولیس هم امروز احضار شده بود به دادسرا تعهد گرفت سندش دیگه در مورد حمایت از بازی هم بازیش یعنی همین سوشال مکانی که تو زندانه حرفی نزنه عجب خب پس به زودی باید منتظر راهپیمایی ورزشکارا در محکومیت سوشال هم باشیم اینم یه مدله شه آره دیگه چه خبرفری برس خارج جان بازار احزار ورزشیات داغ داغ همچنان تو این چند روز گذشته یه رئیس فدراسیون هم که اسمشو نگفتن نگفتند به اتهام پرداخت رشته به دادسرا احزار شده که جامعه نوشته تا امروز شنبه این رئیس فدراسیون هنوز خودشو معرفی نکرده بله اگه چی میشه علی کاف باشه این کاف باشه فکر کنم محمد مایلی کهن کلی خوشحال میشه دیگه فورا میره ملاقاتش با کامپوت گل یک <تص> گزارش اخبار ورزشی شبک سه پخش کرد پرشید از تیم فوتبال دختران نگینه، نگین اشتران کوه ازنا به عنوان دوست. تنها تیم و استان لرستان که تو لیگه برسر بازی میکنه واقعا این گزارش از اخبار رو پرشید. مشکلات مالیشون با چسب کاغذی پشت پیرناشون شماره زده بودن اونو نشون دادن قابلمه غذاشون رو نشون دادن که تو مینی بوس داشتن غذا درست میکردن مثل اون زمان تیرکمن سنگین گوش بدیم به حرفای چند تا از این بازیکن‌ها گوش کن ما الان بزرگترین مشکلات همان مالیه حتی تیم همون لباس دوبوم هم نداره ما متاسبانه مجبور شدیم خیالی کار قشنگی نیست تو سطح که برتر ولی مثلا بازیکن ما باید بیاد لباسشو تو چسب بزنیم با چسب و فیکس ما خودمون قابلم هم. از شب قبل مساقه میخوام حرکت کنیم ما با پکنیک غذا تو ماشین درست میکنه، ما اگر این شرد ادام پیدا کنم امکان انصرافمون فکر کنم همه اینا فریبورز زیر سر شوهر نیلو فره اردالانه من باید فوتبالیست های خانم برن مشکلشون رو با ایشون حل کنن اتمالا بله این هم یه حرفی فرشین چا ممنونم ازت فریبورز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگهده همه کهی به امروزم تموم شدیم اولین برنامه این هفته به پایان رسید شاعر میگه کاش من و تو فراموش ما نمیشد در قاموس این روز روشن و تاریک که زندگیش خانده ایم. زمان رویای شیری نیست که میلغزد از لا بلای انگوشتان که تو را جز به امنیت کنج این دل نمی توان رساند به روشنای فردا کاش دستکم میشد آینه رقصان چشمهای خندان را از بر میشد تا در فردای محالود به وقت دلمردگی آفتاب از نگاه او بشود پل زد به یاد به دیروز به تو شبتون خوش لحظهاتون شیرین شب که راز بودن اطراف پوش بار که ساز دیدن را سرداد پر که شغل خنده اطراف بار من که شعر ماندنت را. خاند